ریچل، جمعه دوازده جولای دو هزار صبح از با در اومدم، هنوز گیجه خوابم، سرم زنگینه وقتی می نوشم امکان نداره خوابم نبره یکی دو ساعتی همینجور تو سرما بیهوش میافتم. بعد بیدار میشم، رنجور از ترس، زل از خودم اگه یه روزو بدون نوشیدن سر کنم اون شب خوابم سبکه و مدام از خواب میپرم و خوابم عمیق نمیشه بعدشم صبح نمیتونم بیدار بشم نمیتونم از جام جام بخورم و تا ساعتها گاهی کل روز وزم همینه امروز تو واکن فقط چند نفری هستن دور و برم خلوته هیچکی بهم نگاه نمیکنه برای همین سرمو تکیه میدم به پنجره روچه شامو میبندم رسیدیم به علامت این وقت صبح این وقت سال خورشید مستقیم پشت خونایی کنار راه هن میتابه و اونجا رو غرق آفتاب میکنه. میتونم حسش کنم. گرمای این صبح آفتابی رو روی صورت و دستام. انگار نشستم پشت میز صبحونه، تام رو بروم، باهای لختم رو باهاشه. آخه باهاش همیشه خیلی گرمتر از باهای منه. چشم چشمی به روزنامه. میتونم حس کنم داره بهم لبخند میزنه. میتونم بالا خزیدن سرخی رو از سینه بگردنم حس کنم هر وقت به هم نگاه میکرد اینجوری میشدم به زور چشم برمیدارم و سرمو بلند میکنم تام قیب میشه ما هنوز رو علامتیم میتونم جس و تو باغش ببینم و پشت سرش مردی رو که داره از خونه میاد بیرون یه چیزی دستشه شاید یه لیوان قهوه خوب که نگاه میکنم متوجه میشم جیسون نیست. این مرد قد بلندتره، کشیدهتره، تره، تیره یه دوست خانوادگیه، برادرش یا برادر جیسون. خم میشه و لیوان قهفش رو, رو روی میز فرزی تو ایوون جابجا به شاید جا شایدم شایدن پسرمویه که از استرالیا اومده یکی دو هفته ای میخواد اینجا بمونه. یا مثلا قدیمی ترین دوست جیسونه، بهترین مرد. توی جشن عروسیشون جسمیره طرفش دستاشو دوره کمرش میندازه. نمیتونم باور کنم هوای ریه که یه خاری میشه تازه متوجه میشم نفسم بند اومده بود چرا این کارو کرد؟ جیسون دوستش داره من میتونم اینو ببینم اونا خوشحالم نمیتونم باور کنم که باش همچین کاری بکنه اون سزاوار این کار نیست واقعا حس ناامیده دارم انگار انگار منم که فریب خوردم یا درد آشنایی تو قلبم نشست احساس کردم قبلا تجربهش کردم با مقیاسی بزرگتر شدیدتر بدون اینکه کیفیت درد یادم بیاد ولی دردی نیست که آدم بتونه فراموشش کنه. چجوری اینو فهمیدم؟ همون جوری که این روزا انگار همه همینجوری متوجه قضیه میشن و کشفش میکنن. کشفی <تصفح> که با لغزیدن یک الکترون حاصل میشه. گاهی به شکل متن، گاهی هم یه پیام صوتی. کشف من یه ایمیل بود. و رد یه رژ لب مدل روز روی عقه. البته اتفاقی بود من واقعا قصد فضولی نداشتم خیالشم هم نمی کردم که برم سمت کامپیوتر تام چون اون نگران بود که من اشتباهی بزنم چیز مهمی رو حذف کنم یا رو چیزی که نباید کلیک کنم و یه ویروس یا تروجان رو را بدم به کامپیوتر تکنولوژی واقعا یه نقطه قوت نیست هست ریچ اینو وقتی گفت که من همه مخاطباش و اشتباهی از آدرس ایمیلش حذف کردم بالرغم من نباید به کامپیوتر دست می‌زدم اما خواستم یه کار خوب بکنم و این گرفتاریایی رو که پیش آورده بودم جبران کنم. برنامه میریختم که برای جشن 40 سالگرد ازدواجمون چیکار کنیم؟ میتونستیم بریم یه سفر که به ما یادآوری کنه، باید چطور باشیم؟ می‌خواستم یه سورپرایز باشه برای همین لیست کاریشو محرمانه چک می‌کردم. باید این کارو میکردم. من نمی کردم. من جاسوسی نمی‌کردم. سعی نمی کردم خفتش کنم یا یه همچین کارایی. می اون بهتر از این حرفاست نمیخواستم یکی از اون همسرای بدگمانی باشم که سرشون تو جیب شوهرشونه. یه بار که دوش میگرفت، تلفنشو جواب دادم و وقتی برگشت خیلی عصبانی شد. حتی منو متهم کرد که بهش اعتماد ندارم. دلم لرزید چون به نظر می رسید خیلی رنجیده. حالا نیاز داشتم به لیست کاریش نگاه کنم. اون لپتاپشو رو ول کرد چون دیرش شده بود. باید سری به جلسهش می رسید. یه فرصت عالی بود. پس نگاهی به تقویمش انداختم. بعضی تاریخ ها نوشته شده بود. وقتی صفحه مرورگر ویندوز و تقویمش رو پایین دادم دیدم اکانت ایمیلش بازه. لاغین بود. ایمیلش رو باز گذاشته بود و رفته بود. بالای لیست ایمیلاش یه پیغام داشت از app boyd سین روش کلیک کردم X X X X X همش همین بود فقط یه خط اکس اه. اول فکرم اسپ همه اما بعدش فهمیدم این علامت بوسه چند تا بوس یه <تصفح> چند ساعت قبل پیغام و جواب داده بود درست بعد از ساعت هفت وقتی که من داشتم رو تختمون یه چرت کوچیک می زدم دیشب با فکر تو خوابیدم امروز صبح با ذهنی که پر بود از تو بیدار شدم در حسرت لمس تو انتظار نداشته باش معقول باشم نمیتونم باشم لاقل با تو نمیتونم من از اول تا آخر پیامشو خوندم یه آلمه بود توی ای به اسم ادمین مخفی شده بود کشف کردم اسم طرف آن بیده و شوهرم عاشقشه اینو بار بهش گفته بود؟ چند بار؟ بهش گفته بود که قبلا هیچ وقت اینجور دوست داشتن و تجربه نکرده و نمیتونه مدام انتظارش رو بکشه و این خیلی طول نمیکشه تا اونا بتونن با هم دیگه باشن واجه برای بیان حس اون روزم ندارم اما حالا نشستم توی قطار، اصابانیم ناخونام و کف دستم فشار میدم عشقی توی چشم حلقه میزنه جرقه شدید خشم و اسم احساس می کنم احساس میکنم نگار چیزی از ازم گرفته شده اون زن چطور میتونه جس چطور میتونه این کارو بکنه آخه جیسون چه ظلمی در حقش کرده به زندگی که دارن نگاه کن ببین چقدر قشنگه من هیچ وقت نمیتونم بفهمم آدم چطور میتونن انقدر راحت برن دنبال دل خودشون رو یکی دیگر رو عذاب بدن و نادیدش بگیرن کی گفت آدم باید دنبال دلش بره خیلی خودپسندانه است خودپرستی همه رو تسخیر کرده. قرقه نفرت شدم اگه الان اون زنه رو میدیدم اگر جسم میدیدم توف مینداختم تو صورتش چشماش شد در یه مشکلی تو خط پیش اومده، قطار سریو سیر 17۵6 دقیقه به و کنسل شده بنابراین مسافرای اون به قطاری که من داخلشم هجوم آوردن و توی این واگن سر پاواستادم. خوشبختانی صندلی دارم اما با این راه روی بدون پنجره و تنه هایی که بهشون و گردنم میزنن جامو و تنگ میکنن. دارم به زو حالشون میدم عقب. بلن میشم و اولشون میدم تمام مدت گرم و متساعد میشه به هم نزدیک میشه احساس میکنم انگار از چیه ماسک نفس میکشم حتی اگه یه پنجره کوچیکم باز باشه و با اینکه در حال حرکتیم بازم واگن دم کرده به نظر میرسه یه جبه فلزی بسته اوه اکسیژن کافی برای هم نمیرسه حالم بده نمیتونم منظره قهوه نوشی امروز صبحی توی ذهنم مرور نکنم نمیتونم از این احساس که این کار من هنوز اونجام دست فردارم نمیتونم بی خیال خیره شدن به صورتاشون بشم من جست و مقصر میدونم امروز صبح به خاطر جست و جیسون دلم گرفت به خاطر کاری که اون زن انجام داد و احساسی که مرد میتونه پیدا کنه به خاطر برخوردی که ممکنه داشته باشه وقتی بفهمه که دنیاش عشق متعلق به خودش بخشی از زندگیش دریده شده من گیج و منگ داشتم قدم می زدم بدون اینکه حواسم باشه کجا دارم میرم همینجور بیفکر سر از کافی شاب درآوردم که همه همکارای سابقم به خاطر هانتیکتون ویتلی میرن اونجا تا بیام ببینمشون از در رفته بودم تو حالا خیلی دیر بود که برگردم اونا به هم نگاه میکردن، هنوز انعکاس لبخندوی چشم تو چشم یه قبلشون تو چین و چورکای دور چشم و صورتشون بود. مارتین مایلز با ساشا و حریت، ست آدم ناشی، اشاره کردن و برم دستگون دادن. مارتین گفت، ریچل، دستش دراز شد منو بغل کرد، انتظارشو نداشتم. دستان بینمون گیر کرده بود و جلوی بدنش ویل مونده بود. ساشا و هریت لبخند زدن. برام از رو هوا فرستادن فرستادن. سعی خیلی نزدیک بشن. اینجا چی کار میکنی؟ یه رنگ از راخم پرید. سرم انداختم پایین. رنگ به شدن خودم حس میکردم. فهمیدنش بدتر بود. یه خنده علکی تحویلش دادم و گفتم برای مصاحبه برای مصاحب مارتین پشیمونیش رو پشت تعجبش پنهان کرد و گفت او با کی؟ و ساشا و حریت همچنان سرت گم میدادن و لبخند میزدن نمیتونستم اسم یه مؤسسه روابط عمومی ساده رو به یاد بیارم. هیچی. یا حتی به یه شرکت املاک فکر کنم چه برسه به اینکه یکی واقعا برای استخدام باشه. من فقط اونجا وایستادم. با انگاش سبابم لب پایینم و ماریدم و سرت دادم بلاگر مارتین گفت فوق مهرمان نذاره بعضی از این مؤسسات یه جور غیر عادی و مرموزی دوست دارن اینجوری باشن نه تا وقتی که قرارداد امضا نکردی و همه چیز رسمی نشده نمیخواد چیزی بگی حرف مزخرفی بود خودش هم میدونست اما خب اینجوری گفت تا منو نجات بده با اینکه هیچکس حرفشو نخرید اما همه وانمود کردن که اینطور فکر میکنن و سر دادن هریت و ساشا از روی شونه هم به در نگاه میکردن اونا به خاطر من معذب شده بودن و میخواستن یه جوری در برن گفتم بهتر من برم یه قهفه سفارش بدم نمیخوام دیر کنم مارتین دستشو رو بازوم گذاشت و گفت خیلی خوب شد که دیدم دریچه حس هم دردیش تقریبا قابل لمس بود من تا یکی دو سال آخر زندگیم هیچ وقت نفهمیدم که ریاکاری هم میتونه یه جور همدردی باشه برنامه این بود که من برم کتاب خونه تو خیابون توبالت اما نتونستم خودم راضی کنم که برم برای همین به جاش رفتم پارک ریژند و تا انتهای پارک قدم زدم بعدشم رفتم سمت باغ بحش زیر سایه یک درخت چنار رو زمین نشستم به ساعتهای خالی پیش روم فکر کردم که باید پارش میکردم به حرفی که تو کافی شاب زدم، صورت مارتین و مجسم کردم وقتی که با هم میکرد. هنوز نیم ساعت نشده بود اونجا نشسته بودم که موبایلم زنگ زد. بازم تا تام بود. از تلفن خونه زنگ میزد. سعی کردم مجسمش کنم. با لپتابش توی آشپسخونه آفتابیمون. اما این تجسم آتی چیزای دیگه زندگی جدیده شد و گند زد به همه چی. اون زنه باید اونجا باشه به هر حال توی پس زمینه مشغول چای درست کردن یا قزو پختن برای دختر کوچولو سایش افتاده رو اون گذاشتم که تماس بره رو پیغام سودی تلفن رو دوباره توی کیفم گذاشتم و سعی کردم نادیده بگیرمش نمیخواستم چیزی بشه برم لاغله امروز نه امروز تو همینجاشن وحشتناک بوده تازه هنوز ساعت 10 دهانیم صبح حدود سه دقیقه مقاومت کردم قبل از اینکه تلفنمو دوباره دستم بگیرم و پیامش رو گوش کنم. خودم رو برای جون کردن لحظه شنیدن صداش. صدایی که قبلا با خنده از امی ترف می زد و حالا فقط برای نصیحت دلداری و ترحم بود آماده کنم. اما پیغام از طرف اون نبود. گیر افتادم. ریچل، من آن نام. نفس بکشم. نمیتونستم جلوی دوران ذهنم رو بگیرم یا خارش پوستم و متوقف کنم برای همین بلند شدم رفتم مغازه کناری تو خیابون تیچفیلد و چهار قوطی جین قوی خریدم بعد برگشتم به همون نقطه از پارک اولی رو باز کردم و تا جایی که تونستم سری سر سرکشیدم و بعد دوبار رو به مسیر رفت آمد آدم و پشت کردم تا دونده ها و رو با کالیسگاه بچه هاشون رو همینطور گردشگرا رو نبینم و اگه من نتونم اونو رو ببینم خب میتونم مثل یه بچه وانمود کنم که اونام هم نمیتونن منو ببینن دوباره صندوق صوتی رو باز کردم ریچل من آن نام مکس طولانی باید در مورد تماسای تلفنیک باید صحبت کنم یه مکس تولانی دیگه اون داشت با من حرف میزد یا کار دیگه این میکرد. چند وظیفه ای. همون کاری که همه همسرها و مادرها بهش مشغولن مثل تمیزکاری یا راه انداختن ماشین لباس ببین. من میدونم بهت سخت میگذره. جوری حرف میزد، انگار نه انگار اون این بلا رو سر من آورده. اما تو نمیتونی هر شب هر شب به ما زنگ بزنی. لحنش محکم بود اصبانی. اینکه ما رو با زنگ زدنت از خواب بیدار می‌کنی به اندازه کافی بد هست اما تو ایون بیدار می‌کنی و نمیشه از این کارت گذشت اون وقت ما باید کلی تقلا کنیم تا بتونیم دوباره بخوابونیمش ما باید کلی تقلا کنیم تا بتونیم دوباره بخوابونیمش دوباره ما ما ما ما دوتا ما دوتا تا خانواده کوچیکمون با مشکلاتمون و روزمرگی های معمولمون هر ثانیه لعنتی تخمشو گذاشته تو لونه من همه چیز منو گرفته همه چیزمو حالا بهم به زنگ میزنه که بگه بدبختیم اذیتش میکنه اوچی دفومو تموم کردم و رفتم برای سومی سرخوشی ناشی از نفوذ الکل توی خونم فقط چند دقیقه طول میکشه و بعد احساس ضعف میکنم باید به زود زود باید باید تونتون تون صحبت کنم حتی اگه زود جواب دادم باعث بشه که چیز بدی بگم یک کاری کنم که بعدش افسوسش رو بخورم میخوام بهش زنگ بزنم و جوابشو بدم میخوام بهش بگم نگرانش نیستم نگران خانواده‌اش نیستم و برام هیچ اهمیتی نداره که بچه‌اش هیچ وقت نتونه توی زندگی شبا راحت بخوابه میخوام بهش بگم اگه خیال میکنه رشته اون دو رو به میکنه خودم میگم انتظار نداشته باش آخر باشم اون رشته اول منو به تام وز کرده چون ما از اول با هم دیگه بودیم خود تام اینو به من گفت خودش تو نام اینو برام نوشت تا احساسات شدید فنا رو بیان کنه هرچند حتی همینم حرف خودش نیست از هنری میلر دوزیدتش هر چیزی که اون زن داره دست دومه میخوام بدونم این چه بهش میده میخوام برگردم زنگ بزنم بهش را ازش بپرسم چه حسی داری از زندگی کردن تو خونه من با وسایل من وسایلی که من خریدم خوابیدن روی تختی که من سالها با تام شریکش بودم چه حسی به تو میده غذا خوردن بچت روی اون میز آشپزخونه‌ای که نمیدونی چه ماجراهایی داشته چه حسی بهت میده واقعا برام عجیبه که تصمیم گرفتن اونجا بمونن تو اون خونه تو خونه من وقتی تام بهم گفت نتونستم باور کنم. من خونه رو دوست دارم. من اصرار کردم که بخریمش. با وجود موقعیتش. من اونجا اون پایین کنار آهن رو دوست داشتم. دوست داشتم به عبور قطارا نگاه کنم. از صداشون لذت می بردم. نه صدای نخراشیده یه و سیر درون شهری. صدای این قطارای قدیمی رو. صدای طلق تلوخ باستانیش رو. تام بهم گفت همیشه از این وضعیت خوشت نمیاد دلتو میزنه بالاخره این خط و ارتقا میدن و بعدش تبدیل میشه به صداهای گوشخراش قطارای سری و سیر اما من باور نکردم که روزی این اتفاق بیفته من اونجا زندگی کردم اگه پول داشتم اون خونه رو ازش میخریدم و از اونجا بیرونش میکردم پول نداشتم حتی وقتی طلاق گرفتیم خریداری پیدا نشد که قیمت مناسب معقولی پیشنهاد بده برای همین گفت که خودش از من میخره و تا وقتی که بشه به قیمت مناسب بفروشدش همونجا میمونه اما همه هیچ وقت خریدار مناسبی پیدا نکرد عوضش اون زنه رو آورد و اونم آشق خونه شد مثل من که آشقش بودم تصمیم گرفتن همونجا بمونن. به نظرم زنه باید خیلی به خودش مطمئن باشه چون از این که پاش رو بذاره جایی که قبلا زن دیگه اونجا بوده ناراحت نشده. معلومه که اون منو تهدیدی برای زندگیش نمیبینه. <تصفيق> من به تیتیوز فکر میکنم و به اشراویل که رفخونه ای که اون با پلاتو شریح بود. به پوشیدن لباسای سیلویا شونه کردن موهاش با همون برس. من میخوام به آننا زنگ بزنم و یادش بیارم که سرش سرشو به باد داد درست به خاطر کاری که با سیلویا کرد انگاری خوابم برده بود جین و گرمای خورشید که کرده یهو بیدار میشم و کورمار کورمال دست میکشم تا کیفتستیم رو پیدا کنم هنوز سرجاشه پوستم میسوزه با وجود موررش زنده موندم مرچه ها موها و گردن و سینم را میرن. از اینجا میپرم و مرچه ها در دو دوتا پسر نوجوان 20 متر اونورتر از من به یه توپ فوتبال لگت میزنن. وایستادن به تماشا، خندهشون منگترم می‌کنه. میکنه. خطر وایستد. ما تقریبا جلوی خونه جس و جیسون هستیم اما من نمیتونم از تو باگون اون بر خطاها ببینم. جمعیت جلومو گرفته. نمیدونم اونا اونجان یا اینکه جیسون فهمیده و ترکش کرده شایدم با وجود کشف دروغ هنوز داره پای زندگی میکنه